جهت عرض تسلیت محضر مقدس آقا حضرت بقیت الله العظم ارواح انا فداه تعجیل فرج آقا و سلامتی وجود مقدس آقا سلوات دوبوم رو قراتر تقدیم کنیم اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمدک اللهم و ونستغفرك و نستغفرک و ونسلم و على سيدنا و سید رسولیک الذي سميته في السماء احمد و فی بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته المعسومين المظلومين سي ملكه الحسين بقية الله في الأرزين الذي يملو الأرز قستاً وعدلاً كما ملأت ظلماً وجوراً ولعنت الله على أعدائهم ومخالفيهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين من الأولين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 وعلی اصحاب الحسین ایام حزن و مصیبت امام زمان شاء الله چشمی به این مجلس عضا داشته باشند به امضای قبولی حضرتش برسد ما هم نیت کنیم سواب مجلس صرف تعجیل پرج آقامون بگردد شرط ادب را بجا جهت تسلای قلب داغدارشون، تحجیل پرجشون، سلامتی وجود مقدسشون و جهت جلب توجهات و انایات خاصه حضرتش به این مجلس و محفل صلوات بلندی محبت کنید <تصفيق> خلاصه عرایز شبهای قبل ما این شد که برای اینکه بتوانیم خوب ای باشیم برای سید الشهدا علیه السلام خوب بفهمیم راهش را کربلایش را آشورای حضرت را خوب دفاع کنیم در مقابل دشمن در مقابل شبهات به دو تا نکته نیازمندیم یک قصه صحیح کربلا را بلد باشیم دو تحلیل صحیحی از اون تاریخ داشته باشیم و عرض شد تاریخ کربلا به قول ما سه طرف داره یک طرف مردم یک طرف خود آقا عبدالله الحسین علیه السلام و یک طرف هم خداوند متعال بحث شد اجمالا راجع به این که این سه طرف نسبتشون با هم چه بود؟ ظاهر قضیه، ظاهر تاریخ، ظاهر وظیفه شرعی، ظاهر امر و نحی، ظاهر حرکت سید و یک طرف و پشت پرده قصه عهد و میثاقش با خداوند متعال علم غیب امامت و مشیت الهی یک طرف اینا اجمالا بحث شد امشب میخوام برگردم به اون بخش اول دوباره که مردم و صحبتم این هست که مردم زمانه شهادت آقا سید الشهدا علیه السلام اصولا فهمشون از امامت چی بود اصولا راجع به کلمه امام که من و شما میگیم امامت یکی از اصول دینه چه جایگاهی داره شعنش چی هست یک شعنش امام این هست که خدا حکومت را کلا به او واگذار کرده با وجود امام حکومت به کسی نمیرسه با وجود پیغمبر و وسیع پیغمبر حکومت به کسی نمیرسه هرچه باشد اسمش حکومت جور است اسمش حکومت ظلم است یه اعتقاد من و شماست باور دومم این امام یعنی بعد از پیغمبر خدا کسی رو قرار داده که این پیغمبر علم داره این پیغمبر به خدا متصله این پیغمبر علم غیب داره این پیغمبر مردم باید تمام معالم دینشون را از اون امام یاد بگیرن و شهن سوم امام ما الان اعتقاد داریم امام ولایت تکوینی داره به ازن خدا تمام خلقت تمام آفرینش در ید قدرت امام هر جور تصرف بخواهد بکند معجزه بخواهد بکند ولایت تکوینی داره این قدرت رو داره این خب این اعتقاد سه جملهی من و شما راجع به امام حرف من اینه تو سال شست و یک هجری قمری روز آشورا که سید و به شهادت رسید علیه السلام و السلام مسلمونای اون زمان اینو میدونستن؟ این سه کلمه که من گفتم اصلا میفهمیدن امام یعنی چی؟ یاد گرفته بودن بحثی به نام امامت هست عرض منه که نه نهی که عرض میکنم نه به صورت مطلق وسط درصد الان میخوان مثال بزنن اکثریت رو میگن 90 درصد یعنی اکثریت بسیار بالایی از مردم جامعه اسلامی اون زمان نمیدانستن چیزی به نام امامت با این شعون با اون تعریف جزء دینه نزاشته بودن به دست اینها برسه تبلیغات نزاشته بود حکومت نزاشته بود اهل بیت خانه نشین بودن اصحاب جرأت گفتن نداشتن منبر نمی گفتن خطاب مسجد محراب از این حرفا خبری نبود بنابراین مردمی که در سال 61 هجری اسمشون مسلمان بود جاید بتوانم بگم بالا در درصدشون اصلی را به نام امامت جزء دین باشه نمیفهمیدند جاهل بودند اونهاییهم که میدانستند به آلودگی دنیا به آلودگی پول و ثروت به آلودگی قدرت و هزار و یک آلودگی باخته بودن میدانستند و عمل نمی میدانستند و تسلیم نبودن خب برای اینکه رو بتونم باز کنم این پنجاه ساله رو یه مروری بکنم فقط با شأن حکومتی امام برای مردم چی یاد داده بودن؟ بعد از شهادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و و وسلم به مردم اینجوری یاد دادن آی مردم بحث حکومت و حکمرانی امری خدایی نیست این کار خود مردمه مردم جمع میشن برای خودشون حاکم رأی میدن مشخص میکنن کسی دانه کنه خدا نسب میکنه با پیغمبر نسب خدا تمام شد اینا از کجا میگید؟ پنجاه سال میکفتم ببینید ابو رو اولش تو از مهاجر انسار بزرگان جمع شدن انتخابش کردم بعدم همه مردم بلاد فوج فوج قبایل ریختن باش بیعت کردن شد خلیفه مسلمین هم شرعیه هم اسلامیه هم درسته آی مردم خلیفه را مردم تعیم می کنن. اگر فردا روزی قبایل ریختن بزرگان مردم با یزید بیعت کردن کسی حق نداره بگه خلافت یزید غیر اسلامیه بیدین می چون از اولش همینجوری بوده ها می بگید قبلی ها هم قبول نداریم؟ می بگید اولی هم قبول نداریم؟ دو آی مردم یکی دیگر از راه در جامعه اسلامی حاکم را مشخص کنن و تعیین کنن این است که خلیفه قبلی وصیت کند بعد از من خلیفه چه کسی باشد همانطوری که دومی اینجوری انتخاب شد ابوبک وصیت گفت اسمان هم نوشت تو اونجا اسم عمر ابن خطاب هم نوشتن که من فردایی مردم تو این مرض، وصیت میکنم خلیفه عمر ابن خطاب باشه و شد آی مردم دین اینه ها، اسلام اینه شرع اینه قبلی وصیت کرد بعد من کی باشه همه بدونید از نظر دینی این درست که چه چود سال شسته هجری میگفتن آی مردم معاویه هم همین کار رو کرد وصیت کرد نوش بعد از من خلیفه پسرم یزید باشه این عمر اینجوری یزیدم مثل عمر خلیفه شد شرعی هم هست اسلامی هم هست دینی هم هست درست هم هست این داره تبلیغات میشه نمیذارن کسی دم از کلمه امام بزنه اصلا نمیذارن مردم بشنون که امامتی هست از طرف خدا که یکی از شعونش هم شما امروز تو این مسجد نشستید اما تو اینا رو بلدی با ذهن الان خودمون مردم اون زمان رو نسازیم مقایسه. این که میگم تحلیل درست تاریخ نباشد به انحراف میریم همینه گفتن امر خلافت امر عرفی است امر مردمی است امر آسمانی نیست امر زمینی است زمین هم تو دست مردمه خدا گفته مردم برید برای خودشون خلیفه بیدا کنی تاییم بکنی خب ثومی گفتن گاهی هم میشه ریش سفيدا بزرگا خبرها نخبهها جمع میشن اینا بیشتر صلاح و مسلحت مملکت رو بلدن اینا با تجربه اینا با سوادن جمع میشن از بین این امت یکی رو انتخاب میکنم به نام خلیفه همان طوری که عثمان انتخاب شد و شیش نفر از بزرگان امت رو انتخاب کردم. از طرف عمر، تلهو و زبیر و سعد وقاص و عبدالرحمن هارم اوف عثمان و آقای مظلوم دو عالم امیر المومین علیه السلام هم قاطین جمع کردن مظلومانه شما شش نفر بزرگان این امتی من که مردم بعد من برای این امت رهبر خلیفه حاکم تایید کن ای مردم فردا روزی اگر بزرگان امت جمع شدن تو شام گفتن یزید صلاحیت داره ما ریش سفیدا تشخیص دادیم ما بزرگا تشخیص دادیم خلیفه بشه اعتراض نکنید اسلام همینه این روش خلیفه گزیدن دینیه مشروعه کسی در مقابلش علم برفراخ خارجیه مخالف دینه مخالف شریعته مخالف خواست مردمم هست. خب نفر بعدی امیرالمؤمن علیه السلام او که امامه اونو چکار کنیم او که از طرف خدا منصوبه نه نه نه علی خلیفه است چون مردم انتخابش کردن مردم اومدن گفتن یا علی ما از ظلم عثمان به تنگ آمده بودیم کشته شد الان تو باید خلیفه بشی خدا منصوبت کرده نه خدا چکار است؟ ما داریم منصوبت میکنیم تو جامعه اون روز اسلامی که میگفتن علی خلیفه چهارمه نمیگفتن چون امامه از طرف خدا بوده میگفتن مثل ستای قبلی این هم مردم انتخابش کردن پس مشروعیت علی هم از مردمه اسلامی بودن و حکومت علی هم به این خاطره که مردم ریختن در خانهش ازدهام کردند بیعت کردن پسندیدند انتخابش کردن شد خلیفه حتی دقت میکنید مردم نمیفهمیدن این آقا منصوب من قبل الله به خاطر این حکومت حقشه اصلا حکومت و خدا به این داده بود، ستای قبلی غاصب بودن، نه. می اینم خودمون انتخابش کردیم به خاطر همین قدرت دادیم بهش. این قدر مسئله زمینی بودن و حکومت و اینکه کسی حق نداره بگه بعد از پیغمبر خدا تکلیف را مشخص کرده بود، تو مملکت ممنوع بود، بد بود گفتنش حرف غیر دینی به حساب می آمد دقت کنید اینجا رو تو اوج حکومت امیر مردم نمیتونستن اینو بگن آقا خلیفه است مردم نمیتونستن بگن این از طرف خدا خلیفه سا می گفتن بیدین شدی باید میگفتن این از طرف مردم خلیفه است یه وقتی دو تا نمونه براتون عرض بکنم مسئله روشن می یه وقتی تو خود کوفه کوفه پایتخت تخت پایتخت هر پادشاهی هم مظهر قدرتشه بیشترین قدرت جایه که خودش اونجا ساکنه کوفه هم بیشترین پیروان امیر اونجا بودن از قدیم هم اینجوری بوده تو خود کوفه امیر نتوانست بگه من از طرف خدا تو میدان رهبه محله رهبه اینو همه مورخین نوشتند یه جمعیت زیادی جمعاً امیرالمؤمنین فرمود آی مردم من از طرف خداما فکر نکنید این خلافت این حکومت دست مردم کار و مردم و مردم اعتراض کرده چی میگی علی ما رو تو خودمون انتخاب کردیم عثمان هم قبل از تو بزرگا انتخابش کرده بودن قبل از او هم با استخلاف و وصیت قبل از او هم خود مردم همش با بیعت مردم بوده تو چرا حرف عوض میکنی؟ چرا داری اسلام عوض میکنی؟ سراحتا تو روبروی امیر المومن استادان گفتن نه تو از طرف خدا نیستی اصلا حکومت امر خدایی نیست فرمود شماها یادتون نمیاد نسل عوض شده بیش از بیست و پنج سال گذشته پیر مرد این مردن نسل جوای هرپا رو ندیدن نسل میانسای هرپا رو ندیدن پیرمردام هم همشون تو مدینه نبودن از این پیرمرد که تو مدینه بودن قدیر و خم را دیدن بپرسید خو قدیر و خم می بود. پیغمبر از طرف خدا مردم رو جمع کرد همه مردم رو جمع کرد بالای صد هزار نفرم جمع کرد بابا از مردم با زبان بیعت گرفت با دست بیعت گرفت دستور خدا بود من از طرف خدا از اول این خلافت حکومت مال من بود اعتراض مردم شروع شد دروغ میگی قربت امیرالمومنین فرن. فرمود شاهد دارم افرادی از پیر تو همین جمع شما نشستن تو روز قدیر خوم با من بودن بلندشی شهادت بدی کیا فرمود انس ابن مالک تو بودی با من بیعت کردی همه دیدی بیعت کردن اینجا نشستی بلندش شهادت بدی بلند نشد فرمود عشق تو بودی روز قدیر خوم بیعت کردی آیه قدیر رو شنیدی آیه تبلیغ رو شنیدی آیه اکمال رو شنیدی سه روز موندن تو قدیر خم نامد بلند شو به این مردم بگو اینا نبودن اینا جوونن اینا نفهمیدن نشنیدن نگفته شدی به اینها ممنوع بود خب حالا بلند شو بگو بلند نشد فرمود خالد ابن یزید تو بلند شو بلند نشد برای ابن آزب تو بلند شو بلند نشد این قدر این صحنه بر امیر این سخت اینقدر دل آقا قس شد نفرین کرد این چهار نفر شما میدانید ائمه به این سادگی ها کسی رو نفرین نمی کردن ما میدانیم اینا امامان رحمت بودن دشمن را هم به این سادگی نفرین نمی کردند شما سید الشهدا رو خدای رحمت کند این شهریار رو ما رو گفت دست آخر که از همه بیگانه شد دیدم هنوز با لب خنجر نگاهه آشنا دارد هنوز شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدای جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین امام حسینی که تو گودی قتلگاه نفرین نمی کرد مردم رو دعا می کرد. امیرالمؤمنین تو قضیه رهبه کوفه این قدر نامردی این مردان نامردان اثر کرد نتوانست دیگه نفرین نکند هر چهار رو نفرین کرد که پیری رو بهانه میکنید کم حافظگی رو بهانه میکنید یادم رفته بهانه میکنید نامردا بلند شید بگید دینتونه به این مردم بدانن یه اصلی از اصول دین امامت بود یه قدیری بود من از طرف خدا امام شده بودم برس بگیری انس ابن مالک پیسی بگیری و گرفت کور شویاش از که کور شد به مرگ جاهلیت بمیری خالد ابن یزید که مرتد شد و به مرگ جاهلیت مرد برای ابن آزده بری تو قربت از همون جایی که آمدی اونجا غریب بمیری رفت و مد... یمن به درک واصل شد سؤال من از شما جوان ها اینه تو جامعه ای که خلیفه به ظاهر حکومت امیر مردم نمیتونستن قدیر رو بگن امامت را بگن این مردم با امام حسین چکار کار میکنن؟ چه شناختی از امامت امام حسین دارن؟ چه فرهنگی به اونها منتقل میشه؟ نمیش نمیش میدونید چرا؟ سرش اینه این چهار نفر نمیتونستن بلندشن بگن قدیری بود اگر بلند میشدن میگفتن قدیری بود معناش اینه که آی مردم اولی قاصب بوده ها اگر قدیر علی درست باشه پس اولی قاصب بوده ها و این کلمه کفر بود اون روز این کلمه کسی میگفت همه میگفتن کافر شدی تو اولی را قاصب میدانی کافری اگر کسی از قدیر کشف راز میکرد واقعیت رو میگفت مردم میگفتن ا یعنی تو میخای بگی دومی غاسب بوده کسی بگه دومی غاسبه یعنی کافره لذا جرأت نمیکردند لذا نشد و حالا شما این رو حساب بکنید تا 20 سال بعد امیرالمؤمنین معاویه بر این مملکت حاکمه تبلیغات او به کجا میره یه نمونه دیگه من از خود صحابه بگم کار چجوری بود یه ای داره پیغمبر اکرم هم شیعه از او روایت زیاد نقل میکنه هم سنیا به نام زید ابن عرقن اسمش رو شنیدید تا قضایه کربلا هم زنده بود تو مجلس ابن زیادم بلند شده اعتراض کرد ظالم خودم دیدم پیغمبر این لبها را میبوسید. بین این لبها جسارت نکنی زید ابن عرقم راویه تو کوفه مردم کوفه آمدن پیشش گفتن زید یه چیزایی میشنویم از زمان پیغمبر نمیدونیم درسته نادرسته قدیروخم چیه قدیروخم میبوده اخبارش از یه جاهایی به کوشمون میرسه اصلا چی بوده اصل قضیه مردم نمی دونستن قدیر خم خمی بوده از بس پنهان کرده بودن ابوبکر و عمر و عثمان به غیر از یه عده خاصی که خودشون اونجا بودن از بقیه بلاد، از بقیه شهرها، از بقیه نسلهای بعدی جوانهای بعدی میان سالان بعدی تمام پنهان حرف زدن از قدیر ممنوع حرف زدن از امامت به معنای کفر و این مردم رو شما تصور کنید رسیدن رسیدن به سال شستو یک هجری قمری مردم معاصر امام حسین علیه السلام این آدم بودن نمیدونستن دین اصلی داره به نام امامت نزاشته بودن ممنوع بود به گوشه اینها برسه که بابا امام را خدا انتخاب میکنه حکومتم یکی از شعنهای امامه یکی از کارای امامه اصلا این حکومت خدا به شما نداده به امام داده اون هم خودش مشخص کرده به زید بن ارقم گفتن زید بن ارقم می میبوده یه چیزایی به ما بگو گفت نمیتونم بگم گفتن چرا گفت فی ما فیکم شما مردم کوفه من ازتون میترسم یه جورایی هستید بخوام من بازش کنم یعنی که میرید لوم میدید جاسوسی اگر خبردار بشم من از قدیر خود مطلبی گفتن میگیرم منو میکشن نمیتونم بگیرم می بعد نوبت رسید به 20 سال معاویه معاویه چی میگفت مردم؟ می گفت من ادامه دهنده راه خلفای قبلیم ای مردم خودتون اومدید با من بیعت کردید به اجماع امت خلیفه شدم دیگه چی میخواید؟ همه منو میخوان حتی حسن ابن علی هم آمد با من صلح کرد و بیعت کرد دیگه چی میخواد شام با من بیعت کرد کوفه با من بیعت کرد مکه با من بیعت کرد مدینه با من بیعت کرد خلافت همینه مگه غیر از این شنیدید؟ مردم راست میگه خوب. راست میگه خو تلاافت حکومت رو مردم تعیین میکنن اینم که خودمون تعیین کردیم دیگه چی میخوایم از جانش اعتراض چیه بقید. یه مش عده قلیل که هنوز دینشون رو نفروخته بودن بقیه تو این وادی بودن یه مشت کمیام یعنی شما اینجوری فرض کنید 90 درصد جامعه اسلامی امامت رو قبول نداشتن یعنی نذاشته بودن به گوششون برسه اون ده درصدم پنج درصدشون که بلد بودن شما بگو نه درصدشون که بلد بودن فروخته بودن به پول به استانداری به فرمانداری به شکم و ما تحت شکم دینشون رو فروخته بودن میمونه یه درصد دوره امامحثن مجتبا دوره صیدالشهدا هم کار پیش نمیره تحلیل تاریخ کربلا باید اینجوری پیش بره وقت 20 سال معاویم فرق میکرد آقا فقط پنهان کردن نام حکومت معصوم و کلمه امامت نبود فهششم بدید بالا منبرا ثواب داره علی ابن عبی طالب لعن کنی بالا منبرا ثواب داره سبش بکنی. یعنی اون ورش دینه از این خاندان تبری بجویی جزو دینه قنوت نمازتون اللهم ملعن ابا تراب او الهدفی دینک زبانم لال با جزء دین آقا قنوط نمازه نماز واجبه قنوطش مستحبه مستحب کردن واجب کردن برای مردم که از علی ابن ابی طالب بیزاری بجویی این مردم میرسن به روز آشورا چه اتفاقی میفته دورش جمع میشم؟ نه اطاعتش میکنن؟ نه جهات دیگرش بماند من خجالت میکشم در محضر اساتیدم علمای علام جرسه از بیت مرجع معظم تقلیدهایتون لاغزمای دوزدوزانی تبریزی هم شرف حضور دارن انشالله سواب این مجلس بشود برای تعجیل فرج صاحبمون امام زمان اما با این اوزا مردانی که مندن کنار سید و شهدا مرد بودن مردم من نباید تعریف کنم شعن آن است که خدا بگوید خدا به صد و بیست و چهار هزار پیغمبر با التماس از خدا خواستن خدا اجازه داد شب های جمعه برید کربلا خود حسین رو زیارت میکنید وزیفتونه اما شما 124 زار پیغمبر بیستید روبروی مدفن هفته و دو, دو شهید کربلا اینا هم شما زیارت کنید تقرب بجویید السلام علیکم یا انصار رسول الله السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن ابن علی السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله به کجا رسیدن اینا آقا ما نمی پیغمبران میان به جون سیاه پوس به سلام بدن و تقرب بجوین به درگاه الهی من وقتم کمه نمیتونم بگم اما پشت جمبندی شده ی قصه اینه امشب میخواییم بریم در خانه اصحاب و روزه اصحاب هر آنچه که از اصحاب رو بلدید نیت کنید که داریم بر اونا گریه میکنیم قرائن داریم که لحظه جان دادن شهدای کربلایی که طول عمرتون برا اونا روزه خواندید گریه کردید آقا اونا رو میفرسته به استقبالتون برا هر تعداد از شهدای کربلا روز خوانده باشید اونا موقع جان دادن میان به استقبارد امشب بریم برا هور گریه کنیم برا مسلم ابن عقیل گریه کنی، برا حانی ابن عروه گریه کنی، برا زهیر، برا بریر برا مسلم ابن عوسجه، برا آبس، برا جون قلام سیاهی بود کنار عبیزر بود جون وقتی عبیزر به شهادت رسید مظلومانه از دنیا رفت زمان عثمان آمد خدمت امیر المومنین این جون که میخوام قلام تو باشم حضرت اطور پول میدیم امکانات میدیم برو آزاد زندگی کن آقا میخوام نوکر باشم میشه من نوکر تو باشم آزاد نباشم موند خانه امیرالمؤمنین شب شبه 21 امیر رو دفن کردن صبحش جون آمد خانه امام حسن مجتبا تو کوفه پسر علی اجازه میدی بقیه عمرم نوکری تو باشن هرچی آقا اصرار کرد آزاد برو پولم میدیم مال و منالم میدیم گریه کرد آقا نمیخوام آزاد باشم میخوام نوکر این خاندان بمانه ده سالم تو خانه امام حسن مجتبا آقا به شهادت رسید همون روز اومد تو مدینه خدمت سید و الشهدا حسین هشتاد سالمه اجازه میدی بقیه هم تو خانه تو نوکری کنم هرچی آقا اصرار فرمود برو گریه کرد آقا بزار نوکر بمانم نوکر بمیرم این ادامه داشت تا شب آشورا آقا شب آشورا به همه که میفرمود برید مشخصا به جون فرمود جون تو برو دیگه بسته دیگه نوکری در خانه ما گریه کرد آقا بمانم ماند عجیبه روز آشورا وقتی جون آمد برای اجازه میدان بگیری سید و حرف حرفو عوض کرد فرمود جون بهش تو برات زمانت میکنم برو جان تو بردار برو دیگه بهشتتم زمانت میکنم چیزی از ثوابتم کم نمیشه همه تو خدمت ما کردی برو آزاد زندگی کن افتاد به پاهای حضرت یه جوری آطفی حرض کرد صحبت کرد پسر پیغمبر رنگم سیاه لایق شما نیستم بدنم بوی شما رو نداره لایق شما نیستم خونم لایق شما نیست تو این راکش آقا رو راضی کرد آقایون غیر از بنی هاشم چما ندارید یکی از اصحاب بگه آقا بذار برم از بچه ها و خانوم ها خدا کنم هیا می کرده ما کجا زینب کجا ما کجا خدا هست و که کجا اما جون گفت آقا من یه عمری نوکری نابودم الان بیعدبی از اینها خدا خداحافظی نکنم برم برا سفر من اجازه میدی برم جلوی خیمه های مخدرات باید بچه ها خداحافظی کنم آقا اجازه داد جون آمد جلوی خیمه های این مخدرات آقا این مقاتل خدا شاهده نوشتن تا این مخدرات بچه شنیدن جون میخواد بره به میدان اومده برای خداحافظی همه گریه کنان ریختن بیر یک جوری گریه میکردن برای این غلامشون نوشتن فقط تو خداحافظی علی اکبر این صحنه جلوی خیمه زنها و کودکان به وجود آمده بود با این یه جوری خداحافظی کرد رفت آقاتونم آغاز آقاست جوون ها. دست از این خاندان نکشی ما این همه عزتش دادن زن و بچهشون هم برایش گریه کردن راش انداختن لحظه آخر جان دادنش هم آقا رفت سرش و بالینش گرفت تو چنگل دعاش کرد اللهم بیز وجهه خدا یا این سیاه پوست خجالت میکشی خدا یا رو سفید کردن و طیب ریحه خدای بوی بدنش را معتر فرما ایستاد بالاسرش با آرامش جان داد نزاشت سرشم از بدن جدا کنن حالا من با این کلمه حرف دارم تنها شهیدی که روز دوازدهم محرم دفن نشد همین جونه حکمتی داشت خدا ده روز جنازهش رو زمین موند دور افتاده بود روز بیستم محرم بنی اسد آمدن دفنش کنند دیدن چه نور سفیدی از صورت این به آسمان بلند چه عطری بیابان کربلا را گرفته این غلام سیاه از میکنم آقا جان آقایی کردی در حق اصحابت بالا سر همشون آمد نزاشی زنده زنده سر از بدن احدی جدا کنند مواظبت میکرد مراقبت میکرد حرمت اصحابم شکسته نشه جسارت به این نش. نوع اینها سرشون دامن سید الشهدا جان دادن ذهنت کجا رفت تنها شهیدی که زنده زنده سر از بدنش جدا کردن خدا بود دیگه یک کس نبود بیاد مراقبت کنه سر از بدن جدا نکنی یا عبدالله اینقدر بیکست شدی افتاد از روی زلجنا زمین اینقدر خون از بدن رفته تیرسش رو به قلبش رو پاره پاره کرده یه ظالمی گفت به خیمه های حسین عمل کنید، آقا دید تا زینب و دخترها در خطرن خواست شه بره به سمت خیمه دیگه نتوانست دیدین زانو ها دیگه تاقت نداره اونجا بود بلند بلند گریه کم نوشتن با این حال روزانو خودشو میکشون به سمت خیمه ها اونجا بود به یاد اصحابش افتاد فنادا یا مسلم ابن عقیر یا زهر یا بره یا مسلم ابن عوسج یا هانی ابن و یکی یکی اصحاب شده می که ذ در خطره یا ابطال ازصففا آی پلب یا فرزان های مالی اونادی کنفللات اسم او چتون شده هر چهی صداتون میکنم نمیشنوی نمی و دو چرا هرچی صداتون می میکنم جواب منو نمیدید و انومتكم ان ايها الكرام مردان کریم از روز زمین برخیزید کمکم کنید آقا ما که کمکت کردیم ما که جانمونونو تو راه شما دادیم نه نه برای چی میخوام الان برخیزید قوم ان و انومتكم ايها الكرام مدفعا حرم رسول الان جان زینبم در خطره اجازه بدید اینجوری بگم ماجر زینبم دخترانم در خطره دفاع دخترانم در خطره بلند از خیمه های دختران پیغمبر دفاع کنید <تضحق> اما خواهرت زینب وقتی این صدا رو شنید هلمن ناصرین یانسرون الال وجه الله هلمن من یا اینونا کس <تضحق> رو معجرش گذاشت دوان دوان آمد تا رسید بالای تل زینبیه دید و شمر و جالسون صدره مول و و حالا نهره کابزون بیادی حالا لحیطه هرچی میدان نگاه کرد دید دیگه یاره یاوری نیست چه از فرتبی کسی رو کرد به عمر سد امرزد ایو قتل و ابو عبدالله و انت تنظر و دران درن برادرمو میکشن تو در این نگاه میکنی دیدون ظالم زورت شو برگردون دیگه چاره دختر امیر از همه جا شد روشو کد به سی هزار کرد. جمله رو نگاه کنی تا آخر عمرت میسوزی اما فیکم مسلم یک نفر میان شما مسلمان پیدا نمیشه برادرم را از دست شمر دفع کنه خلاص کنه دید این ها کردن کف زدن دست روم عددش گذاشت به سمت قتلگاه و محمدا و علیا و غربتا و قلت ناصرا بابا یا رسول الله به دادم برست پدرم یا علی به داد دخترت برست امان از دست بی کسی امان از دست غریبی صداش رو سید و شهده گرفت از بس خون رفته بود چشمای سید و رو هم افتاده بود تا صدای خواهرش زینب رو گرفت با هر زحمتی بود چشماش باز کرد خواهرم برگرد به خیمه ها برگرد به خیمه ها یا برو به خیمه من تو را نبینم یا ببند چشمت تو مرا نبینی زینب قرار چه؟ از قفاسرم رو جدا کنم تو تاقت نداری برو به خیمه ها زینب برگشت امر امام جمله آخر من اما عقب اقب, اقب برمیگردد طاقت تاقت نداره یه وقتی زمین کربلا می لرزد بادهای سرخ و سیاه می وزد. چشماش رو باز کرد یه نگاهی به مقتل چدید سری به نیزه بلنده هست در براور زینه خدا کند که نباشد